اصلاح من الشیطان و الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد الغاله فیدین اطلاح این المعصومین و لعت و دائمت مجمعین اللهم افرنا جمعی المشترین و رحمنا و رحمتی رحم از سبت که مقدر یه خود از هم خارج شد چون این بحث وقتی بود که در اصول تأثیر گذاره که اصول ما چه اصول اهل سنت فهم نمی کنه در فهم نصوص و در مسائل و اصول فقه تأثیر گذاره و همینطوری که دیروز خدمتون ارز شد این می تواند از پشتوانه بسیاری از مسائل در ابواب مختلف باشه چه اون چیزی که به اسم مبارس الفاظ گفتن چون چیزی رو که به اسم مبارس ملازمات عقلیه گفتن چون چیزی که به مناسبت به, به ملازمه مناسبت هایی در مباحث مثل تجربی و محضیت و استحقا و عقوبت و اینها گفته شده انصافاً میتونه این بحث تأثیر گذار باشه در کل اصول ولذا ارز کرده میدونست که این اگر بنابرای چیزی به نام فلسفه اصول و فرم بشه یکیش همین بحثه یعنی بحث مناسب با فلسفه بودتون زیر بنا رو بررسی میکنه یعنی زیر بنای اددا زیادی از مسائل به نظر ما بررسی میشه و البته به نظر با ان کاس گاصولش در مدارسهلفاس در این مجموعه این مواردی تو اللفاس وردن ان وا مراز ما ان اون نکته بود که من عرض کردن و اون تاثیر مقام جل در مقام انتصاب البته این مراد ما از تأثیر اینجا توضیح داده بشه مراد ما در این که در مقام جنب میاد خصوصیات رو از مقام انتصال در نظر میگه میشه بحث نیست اصولا ما این بحث رو مفرح کردیم که بحث خوبی هم هست فقط انم الکلام که آیا این از عدله لحظیه در میاد یا این از مجموعه روح قانونی و به اصطلاح واقعیت اعتباس قانونی در میاد اون اینه که قانونگذار الان هم همینطوره. غیر از مرحله جعل و تشری تو همون مرحله باید خصوصیات اجرایی رو در نظر بگیره. یعنی مثلا پرست میخوادی قانونی که برنامه ای مثلا اجتماعی برنامه فرهنگی مثل کتاب های درسی رو عوض بکنه مثال این باید یک مقداری غیر از خود اون مقام جعل و تشری، و خصوصیات تنفیز رو در نظر بگیره یعنی خصوصیات اجرایی شدن میخواد یه مالیات جدید قرار بگیره خب باید جامعه در نظر بگیره شرایط جامعه فرهنگ جامعه وسائلی که دولت داره برای وصول خب الان دولت‌های مختلف برای مالیات راههای مختلف دارن بعضی‌ها امکانات اطلاعاتشون بیشتره از اون راه کامپیوتر کامپیوتر بعضی‌ها کمتره، باید این مناسبات‌ها رو هم در نظر بگیره یعنی باید اجرایی شدن رو در نظر بگیره که این اجرایی شدن نتیجهش همون بحث معروفه که اگر کسی به واجبات اخلال کرد حاکم حق تعذیر داره حتی مثلا اگه نماز نخوندن در جامعه یا روزه نگرفتن یعنی خود واجبات باید مثلا نظام یک کاری بکنه همچون در آیون بارکه هست الگه این مکنه هم فلعه از اقام و اگر قدرت سیاسی پ حکومته در سونوام درس نه اینا باید اقامه نماز رو اقامه صلا و ارزش های دینی رو پیاده کنن در جامعه خودی این مطلب که در بحث بلازه صحی هم یک مناسبه متعرضشون تو بحث لاضرار هم یک مناسبتی متعرضشون خود این مطلب توی موازات عوام هم یک مناسبه این مطلب مطلب صحیحیه این به بین بحث قانونی که الان ارج میکنن نداره این بحث قانونی کلا که در مقام اعتبارات قوونی شال میخوا میخواد به اعتات شخصی باشه، میخواد به بچه شروع برو نام بخرن خب شرایط اون بخش رو بدون ا اگر نان. نام فقط در ساعت هشتاد دوازده ۱ با سر کلاسی درد سر خودیم به شروع برو نام بخرن. یعنی اون شرایط تنفیذ، اجرا و زا الان اگر در قوانین در سح جهانی نگاه بکنه از حتی که از کارهای مهمشون این ح تا میان ما تا 20 تا 30 تا 40 تا ماده قرار میدن چند تا ماده راجعه و نازل مقام اجرا و اجرایی شدن این قانونه چون با در نظر بگیرن پس مثلا این زیر مجموعه های سازمان مرد به اطلاع بعضی از قوانین رو در نظر میگیرن که روی کل کره زمین راج به زن راج روی عصیق راج به زندان این قانون هایی که به حساب معروف اینا سعی میکنن تمام احکام جهانی رو یک نواختن خب از اونم خودشون میدونن که جامعه جهانی دولت ها کشور ها این ها با امریک فرق میکنن کشور اروپایی ها داریم هایی داریم آفریقایی داریم استرالیا داریم آسیا داریم اینا فرهنگ مختلف و لذا مثلا یه ماده قانوشی این قرار میدونی که اگر یک کشوری فرهنگش با این مواد نخورد چه کار باید بکنیم این طبیعی کار یعنی این یک مطلب نیست اصولا باید ما چون در مباحث موا کمتر می انروح قانون رو بررسی بکنیم ما حتا در اعتبار شخصی حتا در اعتبار مولا و اهل این یه بحث دیگه‌ست مفکرتی که نداره و از کردیم این بحث رو ممکن است یک کسی ایراد بکنه که طبیعت قانون این توبه و طبیعت اعتبارات قانونی این توبه چی بیادش اجرا رو در نظر میگیره یک کسی ممکنه از این راه بیاد و سرش عرض کردم چون اونی که زندگی، یعنی اونی که حرکات ما رو تنظیر میکنه اون علت غاییه علت غایی قانون اجرا شدن لذا باید قانون گذار همیشه اون اجرا رو در نظر بگیره شرایط اجرا رو در نظر بگیره اسم شما برطب اصطلاح اصولی بودیشون قراز اقصا یا قراز عدنا بود یا قراز اقصا قراز ایجاد زایی بود در نکلت قرارذ اقصا هم تحقق عمل در خارج بود مثلا میگه آبیار خوب آب بیار خب آب میخوام نمیخواد که لغلغله لسان حساب بشه واقعا آب بخواه. این یه بحثه البته ما در مباحث الفاظ هم یه مناسبتی رفتم مطرحش که ممکن است مثلا بگیم از خود دلیل لفظی هم در میاد حالا چون اینطوریه گفتم نشه یه مثلا رو بحثی بعدی عرض میکنم مثلا همینش میگه عقیم الصلاة تو خود این قابلیته که واسه نماز در خارج محقق بشه توش خوابیده اما السلام توش خوابیده فقط ایجاد داعی نیست این نماز هم باید مقدر تو علیکم اون سیام تو مقام لفظیش خوابیده که من میخوام این سیام در خارج محقق بشه رو این چاست که این نیست حالا این بحث رو من فعلا مطرح نمکنم چون در تحلیل افعال با اونجا مفصلم بحث کردیم که این وقتی میگه افتح چند تا چیز افتحالباب حقیقت این کلمه چیه؟ حقیقت امر چیه؟ این بحث رو ما به تفصیل اونجا مطرحش ما فعلا اینجا جای اشاره اشارهش. اما پیدا از این بحث اصولا این یک بحثی است که آیا ما در مقام جن ببینید ناظر باشه به مقام انتساب. این مراد اینه. این چیزی دیگه‌ای غیر از یعنی وقتی میگه اقیم الصلاه ناظر است به لباس قصی لازم ناظر است بلا تقصیر و لذا در جایی که میخواد نماز اخبر. این نماز این نماز منقیه اگر نماز دیگه شاملش نمیشه این مراد از این بحث اینه ما این رو به این صورت مطرح کردیم که آیا اصلا در مقام جن ناظر هست یا نه چون گاهی اوقات تو مقام جنگ ناظره میگه لا تو سن فل حریم این تو مقام جل ناظره ویدیو بحث نداره که در مقامون بحثی که آران و اصولی ها قرار دادن از قدیم، این بوده که اگر سله و لا تقصیم خوب دقیق سله هم اسلام داده لا تقصیم اطلاح کجا با هم دیگه برخورد دارن توی ضرب انتصال توی خارش ضرب انتصاله با هم برخورد داده میکنن و این عنوان لحظه هم عنوان لا تقصیم رفتی به هم نداره؟ اونجا که برخورد میکن ضرب انتص سؤال اینه که آیا ظرف امتصال میتونه نازل به مقام تشریح باشه؟ یا نه؟ این اصل سؤاله پس اون اگر گفتیم نه این کسان امتغاله به اجتماعن رو حالتشون اینه مقام تشریح یک طرف مقام امتصال یک طرف ربطی به هم نذارم یا به تبدیل از دیر آیان ما ما مقام امتصال ذرف سبوت تکلیفه نه ذرف سبوت تکلیف مقام انكسال وقتی میخواد نواز بکنه این زرد سقوطه نظر به ثبوت لذا اصلا نمیشه مقام تشدید نه این دو وارد شدن اما خب مقام انتصال که زرد سقوطه تقلیده نمیشه تو زرد ثبوت تقلید من عرض کردم خب معلوم مقام مقام انتصال زرد این ندار کلام آیا تو مقام تشدید به زرد سقوط هم نظر داره یا نه در معلوم مقام انتزال ذرف سقوط تکلیف اینجا بحث نیست ایده حل مشکله اجتماع از این راه که دانلود رو چون مفهومه راهش اینه که مقام انتصال ذرف سقوط تکلیفه اگه ذرف سقوط تکلیف شد رفتار سقوط تکلیف داره درست بس این خودش مبنا نیست این ترجمه نشده این خودش با زیر بنا داره با تحلیل بشه اون زیر بنا که آیا تو مقامه سبوت تکلیف به مقام سبوت هم ناظر هست که وقتی گفت سله به لا تقصد ناظره وقتی لا تقصد گفت به سله ناظره از که برخورد علماءی اسلام هم با این مسئله در طور تاریخ این بوده این خیلی چون من معایدم یک برخورد این بوده دو تا مثال بایدون عرض کردیم سله و لا تقصد لا به فلحریف این دو تا مثال کل برخورد علماءی اسلام در طول 1400 سال در تحلیل و اصولیشون این بوده یک هر دو یک جوره هم هیچ فرم نمی کنم لا تسل فلحری با سل و لا تفصر. یک جوره خوب دقت بکنید این خیلی زرافت داریشون شاید نشیده باشیم پس بحثتری اینه ما دو تا مثال داریم دقت کنیم سن ولا تصدد به اخلاق لا ولا این دو تا مثال. یکی نسبتش عمومی خصوص من و یکی نسبتش عمومی خصوص مخلحه هستند totally سن ولا, ولا حری. این دو مورد مجموعه این 1400 سال در میان فقه اسلام اینه این دو مورد یکی هست هیچ فهم نیکن سل ولال پسر سل ولال توسلق الحریم مثل همه یعنی ما چیزی به نام نحیه در عبادات نداریم مثل شما هم نداریم و در هر دو مورد نماز درسته هر طرح سل ولال و الحریم اثر قول او صلی الله علیه و آله نماز درست این رأی در ابو حنیفه استفاده دار که چهار ذنبان هم کردنش تعجب میکنید پس رأی اول که هر دو مثل همان و در هر دو هم نماز درست رأی دوم هر دو مثل همان اما در هر دو نماز باطله این رأی نهج مثلی رو ذکر شد اون میگه صلوات بر فضل مثل صلوات صلی الله علیه و آله علی ایشان میگه چون لا تثر خوابیده لا تقصر و ل سلام لذا این کم میکنه بین این دو تا خ خب جمعش این میشه صله ولات و سال فلق و در هر نماز نامازوااصله ت صله و لا و ص مثل حری با صله و لا تثر یکی هست. و در هرگان نماز بااط می، هم بر میگرده به، و خصوصا من من مطلعه اینا رأی دومه رأی ثگون همونی است که علمای ما قائلا از واسه اهل سنت هم زیاد قائله گفت یکی باب نهی در عبادت سله ولا سلّ فل طریق این نهی در عبادت هست. اینجا باطل هست. یکی اجتماع اون نهیه سله ولا تخصر اجتماع اون نهیه اینجا داره دو قول شد یه قولی که باطل مرجعش گونه حالا بیه نهی از انها یه قولم بینی شد که نه درسته اونایی که اجتماعی شدن درست درسته اونایی که امترانی شدن به هم از اجتماعی البته مبانی و لیتکاری خیلی فهم میکنن حالا اجماع این سه تا رنگ در مسئله گفته شده از در میان اصحاب ما از رضایات ما انصاف قضیه انصاف قضیه از مجموعه یا روایاتی یک توزیهی داره شرق دردی بایده که اصلا از خواب ما نه اوردن بلگه اوردن توجه نشده که این مرضیهش رو با انصاف قضیه از مجموعه روایات ما در میاد که هر دو یکیه و در هر دو نماز باطل صلاله تخصیم نماز باطله صلاله تخصیم نماز باطله حالا این توزیهی داره چون تمام این بحثه اصولی از اصحاب ما مثل ابن داوود، حاجی و ابوالمحمود، و استاد همه رفته روی بحث اصولی و قواعدی و هیچ به نصوص امام نشده. ای آیا از نصوص این ادعایی که ما ممکن گن می‌ذاریم یاد باشه جای خودش فعلا جاش اینجا نیست. ما ادعا داریم که از نصوص این مطلب در میاد. این راجبه این اسمه. در میان اصحاب ما اولین کسی که متنبّه فرض شده تذکر شادانه مصعبی 260 ما قبل از ایشان نداریم اولین شخصی که متنبه فرد بین این دو شده و در لات و سلهری گفته نماز باطله و در سله و لاختر ظاهرش این که نماز درسته قالب اجتماع هم شده یعنی قبل از شیخ طوسی بده 20 سال این قدیمی ترین ایم چهره علمی ماست که خیلی هم واقعا عجیبه چون خود خودش حتی قبل از شهادت امام عسکری وفات مرحوم فاضل انشاءالله یعنی هنوز در دوران در امامت ایشون وفاتشه. در اون مرحله از تاریخ این بحث عقلیه اصطلاح روزیا مطرح کرد خیلی ایشون در این بحثی که داره این طلاق این بحثی دارن که مرحوم کلهی بحث توی جلد 3 در, در جلد 5 در باب طلاق وردن در کتاب من شعبهان طنجیش جلد 5 در, در مرهوم کلینی قدسان لاغنسته در اونجا آوردن یا شیش یا پنگاده من حافظه من خیلی من هم بودت هم کاری بعد از ایشان دویت سال بعد از ایشان شیخ تروسی قائل به بسلام شد اما بحث اجتماع اما نه با بحث نقی در عبادت یک مقداری همون ابهام داشت من در محل خودش عرض کردم مرهوم سید مرتضا رحمه الله در ذریعه همو سلام و ایشان مرتهمه ظاهرا ایشون اشتمارم بود از در عبادت گیرش از کلام انصاف این مطلبی که عبادات ظاهر وارد شد و ظاهره اذه اصولیها اساس سوسیال و عدالت از, از اصولیها اصولی اصولی اصولی اصولی اصولی اصولی این دو بحث رو با هم آوردن تفکیک نگردند در میان اصولی نشیه اولی نفری که تفکیک کرد سیر و مرتضاس مرحوم فضل شازانه که هزار و تقریبا دیلی سال قبل بوده البته الان در کتب اصول ما همین اصول متعاربی که داریم مردم نایمی آزی ها دیگر ها خوستان کردن الان دیگه روی اصول ما این روی متلم شده که برس اجتماع نه خیلی از برس در عبادت اما این در تاریخ تفکر اسلامی اینجور نبوده دقت کردیم ما معتندیم این مسئله درسته اما ریشه و زیر بنای عصویش اینه در مقام جل ناظر باشه به مقام امتصال اینم به این معنا خوب دقت قطع کنی نه به این معنا که در مقام جرد مثلا فرسون مقام اجرا در نظر نگیره خب این که مسلم رو باید در نظر بگیره الان قوانی بشریه الان همینطوره شما الان نگاه یه ترهی که داده میشه در سطح جهانی اون کنونسیون مثلا رفع کلی اشغال از زنها یه که یک کنوانسیون که اخیرا مطرح شده حدود 14 سال اخیرا مطرح شده نگاه بکنید یه مادش رو دو تا ماده رو میذارم به مرحله اجرای تر اصلا میاد دیگه اگر درام بشه این در جهانی اجرا بشه در خیلی از کشورها فرهنگشون و قوانینشون با این طرح نمی سازه با این برخورد با ها نمی اونجا با چیکار بکنیم اصلا رد میشه در قانون گذاری باید مقام اجرا رو جز اون مقام اجرا جز مغاب قانونی قانون یعنی میاد یه قانون مالیات میزاره خب این قان مالیات رو میخواد اجرا رو کنه چه سای داره؟ دولت چه ابزاری داره؟ مثل حالا کارلب ماشون در قال ما خودمون خود ابزار مبزار سرج میشه. پس اگر آمد گفت پس صحنه صدار و صهمنه ما آفند. مثل آکنونی خود. این رو به مرجع خود برام مرجع یک نفر دارم پسن علم علاوه بر یک نفر بشه اون آقا به خب این باید تصویر بکنه که راه را... پس همه آمده این باید این تصویر اینجوری بکنه میگه عملا اینجور نمیشه اون بحث عملا نشده که بحثی نیست که این باید تصویر بکنه که آیا ابزار و وسیله ای داره که این سهم سادات و سهم امام رو در جامعه شیعه مطرح بکنه یا نه هم ابزار جذب داشته باشه هم ابزار توزیع و تقسیم داشته باشه خب اگر نداشته باشه وسیله نداشته باشه فاصول از اون دهات دوردست که خانواده های سید اصلا پیرزن پیرمرد موتاژ اون آقا باید بره ویدیوهاش اصلا به مرکز و منبر با مثال می کنم ایشون باید وسیله ای داشته باشه که دو مرتبه این صحنه سازا و به همون دهات و به همون اقراق برسونه اگه نداشته باشه بخود چرا هم که فایده‌ای یک مشکلی که ما الان داری انسجامی در رفتار خودمون نداریم در تفکرات خودمون وقتی میخواد یکی کسی بگه آقا فرسان احوط وجوون یا پتر شما باید برسونیم دست یک نفر اون یک نفر باید خودش در نسید اولا چجور برسونم؟ این یکی دو چجور شما میخواییم تقسیم بکنیم اگر شما وقتی برای تقسیم ندارید باید در نظر بگیرید شما الان مثلا با عنوان ایران که دیگه مطرح نیست شما مناسقه هند و پاکستان و افغانستان و ممکن تو تا جیفستان و تو خود ایران و تو کوهدره ها و توی مناسقه دور و تو خود اراق و تو لبنان و حتی, حتی ازیرشی ها تو آفریقا و شما وقتی مخواه بگیریم اصلا پول رو اینجا بیار زکات رو اینجا بیار خب این باید دنبال چی فکرم بکنه. اون مرحله رو این یه بحث من از کلم اول بحث این ما مراد اون این بحث نیست یه بحث دیگه اینه که اصولا میاد مقام تشریح نگاه میکنه به مقام اجرار به مقام انکساب و این تشریحش با نظرمون مثلا فرسن گفت سله نظرش به لا تخصر هست وقتی گفت لا تخصر نظرش به سله هست اونجا ما آمده این تفسیر رو ارائه کردیم اصولا و این تفسیر آثار زیادی داره من سابقا ارز کردم زواهر عبارات اهل سنت به حتی اصولین قدیم ما با بیرو بنامه باقی هزا هم نمیشناختند اونم مثل تعارض آرز میدونستند خب این مسئله خیلی مهمه. اگر رفت توی مسجد این نجاست هست امر اقیم سلات با امر ازل نجاست رو اینا تا آرز ما الان این رو تضاهم میدونیم. مرحوم این پس مشره ایدارهشون هم تو اول تا آرز پیشترین بحثش تو همون بحث به اسلام مرحله زده ایشون ایک پسل راجع به این که اصلا مقام تضاهم تو مقام انتصاله مقام تا آرز تو مقام جهده جزودگران در مباعث آجیاتو ما نوگرد اما اوائلی که در اصول باره میشین این مفروغانه انه گرفتن که مقام ساز برمیگرده مقام امتصال مقام ساز برمیگرده مقام جل و تشدیل خب این مفروغانه شما در کلمات اهلسان نده میبینیم با دماغی خودو نمیبین. خب این چرا از نقطهش چی بوده؟ این نکته اساسیش این بوده که آمدن مقام جل و از مقام امتصال جدا کرده. السناد و خودمای ما میگفتم وقتی گفت عزله نجاسته این ناظر است به صله این نیست ناظر نباشه اونا میگن یعنی بتون عزله نجاست چرا پشت به صله داره صله چرا عزله نجاست داره این تو مقام انتصال شما گیر کردی که ده خسن می‌گه این تو مقام انتصال و الا عزله نجاستی چرا پشت به صله داره همین مسئله به مثال مثاله کلی بین ازال نجاسه و سله چه نسبتی رو شما میبینیم؟ اونم میگوزن باسته آرز چون وقتی گفت ازال نجاسه میدونه که ازال نجاست گای با سله جور میشه گای با یه دیگه جور میشه وقتی هم گفت سله ناظر بوده به ازال نجاست لذا چی میگفتن؟ میگفتن وقتی که شما آنین تو مسجد ازاله نجاست بود و نماز یک تکلیف هست اون بکنه بکنه یک تکلیف هست یا اون تکلیف ازله یا سلن وقتی اون مرجعات رو می آوردن البته اینجا مرجعاتشون چون دو, دو تکلیف ثابت بود بیشتر مرجعات رو می بودن روی اهمیت و مهمیت اینجور چیزا زیغ وقت و سعی وقت و اینجور چیزا و گفتن چون یک تکلیف هست، اون تکلیف ولی اگر مسلاب میاد ازل نجاست، شنکهوریه. لذا اینه که مثلا مرحوم میشه که میگه ما احتیاج نداریم میگیم اگر امر ازل نجات بود، نه یا مسلاب خوب دکتر میگه میگه خوب تا امر ازل نجات بود، امر اگر مسلاب میاد، یعنی امر اگر مسلاب میاد، تا امر ازل نجات بود. امر عدم صلاح تا امر نبود عبادت نیست. چون اعبادت تمامش به امره. در مموست اشتماع در مموست زد اگه ملاحظه فرمیده باشید مرگوم شیطباها اینجور تقریب میکنه. میگه امر عدم صلاح از اله نجاسه که آمد یکمی یک از بحث خواهش میگه شون مجبور میگه امر عدم صلاح نیست این ذهنیت بود که برای اولین باست مرحوم محقق کرد کی گفت نه اشکال نداره اگر استیان کرد و اضاله نجاست نکرد امر ارقم سواد هست این ترنتوم اینجور خلاصه ای ترنتوم و نظر هست که در نصف تحضیب العصول میگه دائمان هر دو امر هست چون مقام امتصاله اشون همیشه این اولاد تکرار بزنه مقام امتصال زرد سقوط تکریفه نه زرد سقوط تکریفه بس این بود تا امر ازدن نجاست آمد امر ارمستلات نیست دو نه که فقط امر نیست نهیم یه هست این شد امر روشه مختلف نگرده تا اینجا دو تا پس امر یکی اگر امری یکی شد چون نماز خونی نماز باطنه یا نه هست که خب ادهی گفتن یا اگر نه نیست نیست لاعقل امر ارمستلات هست میشه نماز باطنه مرحوم نایی هم همین مقدمات رو نگه مهم نکته میوانی دست در هست اون سفر کلا بس این مسئله بگم دو این سفر این دو رو هست سه امر ازدن نجاته هست امر اقیل سلاف هم هست هر دو هست نه یکی چرا؟ چون این مقام امتصاله مقام امتصال زرف سقود تکلیفه نیم زرف سقود تکلیفه پس هر دو هست وایت ماهانا عقلی میگه صرف قدرت در اهم بکن عقلی میگه خوب دقت کنیم این گفته یه عقلی امره عقل سلاس رو برمین داریم هر دو عمر هست لذا شما اگر اتیان کردیم نجازت از ازاله نساکه امره عقل مستوار هست نمازون درست این رأیه مثل تحقیق و الوصول گیره کتابی رو این چطور رأیی شو سه دار نایمی مهم این در پرتب نایمی کجا آز چه نفتگی داره؟ مرمو ناینی میگه امر یکیه ازل نجاست. پس یکمش با اونا امر یکیه لیکن اگر استیان کردی امر ارمان سلاس میگه این, این مثل قول سبون شد تمام نقطه اساسی ترسطب ناینی این الان ایزا روشن شد برسید لطافت میکن پس اونایی که قدیم ها بودن میگفتن شما یک امر دارین ازل نجاست. اگر نماز دیگه نداریم یک راهی اون اون چیزی مسئله اساسیه در اصول انصافه حتی قدماهای اصول اهل سنت به این ظرافت های شما کار کردین اخیری شیعه نه کار نه, نه قدماهای شیعه نه اهل سنت دلیل الان شما اینجا دو تا امر ببین ازاله نجاست علم الصلاه وارد نقشه شد ازاله این هر ثا وقت هم هست دیگه وقت نباشه ازاله نجاست نکرد این حکم فقه شیعه است مشغول نماز چند تا تحلیل داده شد چهار تا تحلیل داده شد یک فقط امر از در نجاسه هست هست لا خوبه به لذا اگر نماز نمازش باطل دو امر یکی هست از در نجاسه اقیب دیگه نیست خوب دقیق کنیم نهی که نه هست اقیب سلا نیست اما نمازش هم باطل شد نیست این دو یک عمر هم. دو تا امره هست هم ازر نجاسته هم اقم السلام چرا تو این زرف انتصال چرا این آقامو تشریف داره تو مقام تشریف گفت ازر نجازه از وقت اقم السلام چرا این آقامو تشریف مقامو جی انتصال داره پس هر دو هست اقل میگه سرف و از در اهم بکنیم که ازاله نجازه چون فولیه شد طبق این تصور نماز درسته چهار هر چه مرقوم دائمی این اشکال اساسی رو ترقبه ناینی که ادعای مخالفان خب شیخ انصاری مخالف اعتراضه اخوند هم مخالفه خود ما هم ترقبه ناینی قبول نداریم و همین جایی مشکل اساسی نایی اینجاست چون بین بی توضیحی که من عرض می‌کنم عرض نشه، طرح نشه ناینی میگه امر یکیه اون عقل ازل نجاست امر امر المتلاف نیست خود دقت بکن اما اگر تو ازاله نجاست نکردی و وقت امر عقل السلامت میام میاد اینه روشن شد برای تسورگار رو کنید که <تصور> عرض کردیم مبده به احتمال بسیار قوی این نظریه در مقابل نظریه اهل سنت و متعارف شیعه مقدرش مبدهش هم برمون معقل کردی عدتا لاسیبه آملی بسیاره زان الله ایشون توی یه مبحثی تو رهنه تو دینه تو جامعه خاصه ترتب رو اونجا میگه و به همه نظرمان عباده سریعه برای بعضی بودن که لیفتاد واضح نباشه من خوندم تو برد ترتب ایشون اولین اینکه سیست از علمان شیعه که میگه درسته وقتی این مطلب رو ناینی خلاصی هر ناینی هم چیه خوب دقت بکنی میگه درسته امر یکیه چون امر یکی میزنه ولی ازای ایشون اصلا تطریح میکنه استاد ها داره بردی ها مثلا کلمات استاد از نیست. نرهور نایمی تصریح میکنه. اگر فرض کنیم علا فرزلمه ها به ایشان در موارد مثل ازال نجاست متمکن از هر دو بشه دقیق بکنیم فرض کنیم باز هم یک انفصاله چون یک خطاب می دونه اینجا اینجا یک خطاب ایشون یک خطاب دقیق بکنیم ایشون برای مقام تضاهم اینه حتی تثریف میکنه. فرض کنیم محالا تمت کنیم نلی امتصال این من که یکی حساب میشه. چرا یه حساب میگونه ایشان. ما در مبارسه طرفت و با... این رو من الان امروز کنیم که ذهن باز بشه کاملا یک احاطه به عباس و اصول پیدا باشیم. وقت ایشان حرفش اینه. درست امر یکیه. اونم ازایی نجازه. اون امر دوم به خاطر که شما قدرت جمع نداریم ساخت شده یعنی اشکال ایشان در سقوط امر دوم عدیده چون ایشون قدرت رو از شرایط آمه تکلیف میدونن چون شما که قدرت نداریم جمع بین عربون. اون تکلیف دوم دو ثابت شده خوب دقیق بکنیم لیکن تکلیف دوم دو مطلقاً ثابت نشده مثل قضیه هینیه چین اتیان به ازاله اون به خاطر مبتلا شدن به ازاله نجاست صاحب شده حالا شما ازاله نکردید دل چه بلدی چه؟ خلاص؟ روشا شد. اهل سنت و خدای شیعه گفتن اون عمر مرد. عمر رد؟ نه اون امر بود امره مستدره یا که شما آمد شما میخی ازاله نجاست بکنی یا نکنید اون که زنده نمیشه راست چرا شما تعارض می دیدن. اینه که مرموم ناییی کار خوبی کرده اینجا رو با کار جدا کرده من اونجا توضیح ارض کردم اون قدما اون رو تا می دیدم در تا که دو سره وید باشه یکیش که ساخت شد رفت بر نمی گرده اینجا مرموم ناییی میگه نه این امر خیلی تحلیل فکر لطیفیه ایشون میگه امر عقم السلاب به تا آراض ساخت نشون امر عقل السلام به تضاهم ساخت شد تعمل کردیم اگر به تضاهم ساخت شد مثل قضیه این است مادام تضاهم امر نیست مادام تضاهم حالا شما نماز اضاله انجازت نکردیم امر هست اونها چون در وقت شما باید صرف قدرت در اضاله بکنید خب وقتی مشغول اضاله که نماز بکنید که به خاطر اشتغال شما به ازاله امر دقیقا تنسی شد پس این چار مبنا رو خوب حفظ بکنی چیز رو در ترکتو خیلی اثر داره که ما ترکتو چجوری معنا جوری منابه کنیم اشتغاله مرموم شیخو از اشتغالی در کفایت داره چیز دیگر هست. اما در حقیقت نکته اساسی اینه یعنی به نظر ما نقطه اساسی حالا سابقی گفت اجتماع زده این چه این چه عرضیه این این نیست اجتاد اصل مطلب این تصور ما از ریشه این اون تصور ریشه ای اینه اصلی اینه چهار تا تفصیل برای شما در اینجور نهره چهار تا تحریم که شما بسید رونا فکر بکنیم هر دو هست یکی هست یکی دیگه نیست یکی هست، یکی دیگه محدودن نیست. یکی هست، یکی دیگه که نیست، هیچ نه یا هست. این چهار تا احتمال. مرامی بمون اینه که اونی که حل این مشکل رو میکنه، تغییر و عنوان تضاحم و تعارض نیست. تغییر او حیرت در عینت آیا در مقام انتصال جر ناظر مقام انتصال هست یا نه الان اگر وقتی از این امشبتون بعد به تغییر احداثا ظاهرا باشه من که تغییر می‌خوام میگم بلکه ببینید شما نگاه کنید این که آیا متعلق عام کبیری یا فرده خب کردن مطرح کردیم در محاضرات نظر اول جلد دوشون شو مطرح جلد آیا عموم تعلق به توابع گرفتن یا به خب خدای خودی فهمیدن خب یعنی خدای خودی بلا اشکال مبع اصولی بزرگی هستن که از اعلام این فندن انصافن خب خود ایشان می‌ذره هیچ وقت ممکن نیست جلوه اعتبار به فرد تعلق بگیره دائما متعلق جلوه جلب خاص کلی باشه اصلا امکان نداره حتی اگه در این لحظه بلند بشه و این در رو الان باز کنه بازا متعلق باز کردن کلی نمیشه اصلا چون هر تا تشخص فیده نکنه فرد میشه تشخص رو کرد امرش سلام نگه اون تأثیر آدم میشه شما این تصور بکنید که متعلق امر ترد باشه تو قابل ترد نیست شما هرجور بخواهیم تصور کنیم دائما متعلق امر کنیم یعنی وجود نداره خب منا نداره <تصفح> امره به موجود که منا نداره خب خدا آره عایق خویی که چه تباین و آفه. خب یعنی حالوی خب این بحث میشه. راست درک کردی؟ نگاه که ایشون نوشی مراز از این بعد دو ایشون خواهی کلیه در قلم دوستی داری آدم. اشته ادی و بودید؟ کلیه در قلم. اصول داره. ایشون گفته مراد این از این بحث این که عوامل متعلق به تباین یا متعلق به احران. مراد جدیشون این نکاحه کلی طبیعی در خارج از روز داره. ماضیای در منطق فلسفه. اصلا مشخص نیست. ایشون گفته مراد جدیه. چرا ایشون این تو توگی دیگه‌نا یکی بود مثلا؟ چرا ایشون توکی فنده؟ چون به حسب ظاهر نگاه کردن پس لغوه. یعنی ایشون متعلق عوام عوام به تعلق خوایم بلافه. قاعدتا بر بحث داره. چرا دانش این بحث کردن عوام تعلق به تمایز؟ میگن یک شخصیت اصولی بزرگ مثل مرحوم عساط قدسان الله و سره و شریک خود ایشان بردسان توجیه کرده، چون واقعا بعض اصلا بحث رزوار خیلی بحث نمناسبی اصلا یعنی بحث اصلا قیره معهوریه یعنی شه اول بحث تعلقه اید افراقه امکان نداره بحث تعلقه ده به یعنی همیشه بکنه بیه نمیشه به عنوان به فرد خارجی هم تعلقه بیه امکان نداره اون کی تا تشخص خارجی دادن نفانه فرد نمیشه ما در اونجا توضیح دادیم برای اولین بار که ایشون با ای مقامشون این مقامشون تحجیل که این نکتش همینه که من هم از کردن مرادشون از تبایه یعنی در وقتی که جل میکنه به مقام انتصار اصلا نظر نداره مقام جل یک جاست مقام امتصال یک جا آیا ناظره به افراده مرادشون از افراد مقام امتصاله یعنی تو مقام جل وقتی گفت سله به لا تقصد نازره تو بخش وقتی گفت لا تقصد به سله نازره سوال اینه اگر ناظر او تقییر میخوره سله پیغیره پس تو لا تقصد میشه. پس مراد جدی اون بحث که مثل هر تو قصد گیر کرده یعنی چی اصلا بعد؟ مرادشون از تبایه یعنی شما مقام جل و از مقام انتصال جدا بکنید همطور کن آقا فرمون مقام جل مقام سبوت تکلیفه مقام امتصال مقام سقوط تکلیفه رفتی به هم برد. این مراد از تبایه و مراد از اقصاد یعنی این مقام انتصال هم میاد تأثیر میگذاره تو مقام جل ولی زم بحث اجتماع رو نه بحث نه بحث مقدمه‌ای واجب تمام اینا و این هایی که امروز ما ده ده انجام می‌دیم که البته توذیری که بعد از ما یک نکته فنی داره اون نکته فنی اینه که آیا تغییر اصلاح تغییر تعارض تضاحم که در مقام انتصال پیدا میشه این تو جعلم ناظر بوده یا نه اونا میگن وقتی گفت صلح همه افراد صلح رو دیده حتی خلاد در دار قصی یا در لباس قصی او دیده گفت صلح و چون گفت لا یعنی نماز در دار قصی و لباس قصی رو قبول ندارم دکرد که این معنی مقام ایتا مراد اینه تو مقام ج الان تو ذهنیت شما این بیده تو مقام جلب ماهیت سال در نظر درسته تو در. به قصر نظر داره نه. به ازاله نجاستر در محصر نظر داره نه سال در پس نقطه انشاءالله روشن شد به نظر ما نقطه اصاسی اینه و چرا این رو مطرح کردن اصولی سرش یک سرش اینه که چون مباحث منطقی و فلسفی که به علامه تو مباحث منطقی هم انسان و حیوان ناطق کار منطقی و فلسفی رو تطبیق نمیدونن اینا بخواستم بگن ما در اصول وقتی میگیم اقمه سلاف این مثل, فلس... مثل قضیه منطقی یا فلسفی نیست مثل, مثل الموجود از با اشتماعات ما اصلا وقتی میگیم اقمه سلاف یا میگیم از سلاف و باید به مقام انتصال ناظر باشه. فرق از دین قضایی اعتباری با قضایی که شما در فلسطه و منطقه با ما قضایی حقیقی می واقعی می کنی. فرقش اینه در قضایی اعتباری انتصال و انجام دادن مقره نظره به قضا. علت قلیه روشنی شد نقطه مقام انتصال وقتی میگه صله باید در افراد نماز نظر بکنه چرا شد هدفش اتیان خلاصه وقتی هم گفت ازاله ازال نجاسه باید به ازاله نجاست چون هدفش ازاله نجاست از مسجد اگر هدف به علت غایین شد انتم علت غایین محرک اساسی و محضد اساسی, اساسی تصرفات ماست پس وقتی گفت سله به ازاله نجاسه نظر داره وقتی گفت ازاله نجاسه به سله نظر داره لذا اهل سنت رو تفصیل کرد به تعارض نمیشه در وقتی که شما وارد محسی سورین هم امر ازل باشه هم امر اقم باشه اسمیش گفتن تارول گفتن ما با شواهد موجود فقط میگیم فقط امر ازل هست دیگه امر اقم نیدیم فقط امر ازل هست ولی اگر اصیان هم کرد نمازم کن باز باخله چون این رو تارول میفهمیدن حالا اون رفت رفت رفت بگه مرد نمیگرده نمی نا اینی آمد گفت نه گفت گفتن این تعارض نیست این تضاد است صحیح رد اما ردی که برمیگرده خب شماها پس تا اینجا داشت فکر میکنم یه مقدار ویربنا‌ها رو گفتیم باز یه ویربنا دیلا رو که این شاء الله درس دادید